بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی موضوع سخنرانی امامت جلسه هشتم اولو بالله السمی العلی من شیخان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبی نو شفیع ذنوب نابل قاسم محمد و علی اهل بیت و لعنف الله علی اعدائهم اجمعین الهایوم يوم کسی که در یک سال سودی از کسبش نبرد در آمدی نداشته باشد و به قول خودمون از سرمایه بخورد کسی که در سال سود نداشته باشد و از سرمایه بخورد سال آینده نمیتواند ما خارج پارسالش رو از درآمد سال بعدش کم کنن هر سالی از درآمد همون سال خرج انسان کسر میشه اما خرج امسال از درآمد سال بعد کسر نمیشه امسال کار نکرده از سرمایه خورده فرض مثلا از میکنم صد هزار سرمایه داشته و این از سرمایه خورده ده ازار تومنش رو خرج کرده نوت ازار تومن برایش واقعی مونده سال آینده که کار میکنه و کسب میکنه و سود میبره نمیتواند بگد من پارسال صد سد پول داشتم امسال صد ازار تومن رو جدا میکنم زیادیشو خمس میرم نه باید بگه پارسال اول امسال نود هزار پول داشتم از نود هزار هر چیزی زیادتر داشت باید خمسه شده هر سال سد پول داشت ولی ده هزار رو خرج شد چون کسبی نداشت منافعی نداشت و امسال که سود میکند باید مبدعش رو همین نود هزار قرار بده نگه من سد هزار پول داشتم خمس داده بوده حالا ببینم از 70000 چقدر بیشتر دارم نه نمیشه باید اول سالش که شد اینو بگه بگه من الان 90000 تومان پول دارم در تومانشو با سال خرج کردم الان 90000 تومان دارم اگر زیادتر از 90000 تومان آخر سال داشت باید خوشی بده و نتیجتا اون که اگر آخر سال حساب کردی 100000 تومان داره 10000 تومان باید خوشی بده نگه من قبلا صد هزار تومان داشتم حالا هم صد تومان دارم پس چیزی زیادتر ندارم نه ده هزار شو خورده بودی و الان این ده هزار که امسال سود کردی این ده هزار تومان رو باید خمس بگید خلاصه مسئله این یک کلمه است از درآمد هر سال خرج همون سال کسر رو میشه نه خرج سال بعد اگر کسی مخارج سال قبلش رو کرد و در سال قبل سود نداشت و به تعبیر خودمون از سرمایه خورد سال آینده نمیتونه مخارج پارسالشو کم کنه مخارج همین سالشو باید کم کنه و اینان ظاهرا این مسئله دیگرش رو قبلا گفته بودیم زرر هر سال را از سود همون سال میشه کم کرد زرر هر سال را از سود سال بعد نمیشه کم کرد. هر سالی اگر یه معامله کرد سود بود یه معامله دیگر کرد زرر کرد در یه جنسش سود بود در یه جنسش زرر کرد این زررها رو از سودها کم میکنه ماحسل و باقی رو حساب میکنه که چقدر سود داره و خمسش رو میده و اما اگر این آخر سال که حساب دید ضرر کرده از امسال اول سال که شروع کرده بود به کار صده داشت حالا که حساب میکنه میبینه پنجه هزارتومن داره پنجه هزارتومن ضرر کرده سال آینده که میخواد کار کنه نمیتواند زرر پارسال را از درآمد سال آینده کسب کنه یعنی مبدع سرمایه رو باید پنجه هزار تومن قرار بده و سال آینده هرچی از پنجه هزار تومن زیاد ترداشت باید خمسیشو بده نمیتونه بگه من اول صده زار تومن داشتم اول رو بذار کنار اگر بخوای بگه اول صده زار داشتم معنیش نیست که زرر پارسالم رو میخوام از درآمد این سالم کم کنم. نه ضرر پارسال از درآمد این سال کسر نمیشه زرر هر سال از درآمد همون سال کسر میشه پس بنابراین از میکنم به اینکه کسانی که در یه سال زرر میکنن کسر دارن این رو شاید هم احتمالا ارز کرده باشم این گرچه خمس بهش واجب نیست چون امسال سال زرر کرده خمس بهش واجب نیست ولی حسابشو باید بکنه برای چی باید حسابشو بکنه؟ باید معلوم کنه سال آینده سرمایه شروع به کسبش چقدره چون سال آینده از این باقی مندهی که حالا باقی مونده نیزان باید قرار بگیره بنابراین اگر صد هزار داشت مشغول کسب شد امسال ضرر کرد آخر سال معلوم کنه که چقدر ضرر کرده و آخر سال معلوم کنه که این سال آینده که حالا میخوام وارد بشم درش آیا پنجاه هزار دارم شهست هزار دارم هفتاد هزار دارم این رو بر این جهت باید حساب بکنه پس بنابراین کسی که ضرر میکنه نباید خمس بده ولیکن اگر عرض میشود به اینکه حساب نکنه نمیتونه سرمایه سال آینده شو بفهمه چقدره پس بنابراین حسابش رو میرسه و معلوم میکنه که سرمایه من چقدره او وقت سال آینده همونی که آخر امسال باقی مونده مبدع سرمایه خودش قرار نمیدونم معلوم شد یا نشد اللهم